بسم الله الرحمن الرحيم نزده من آرائيه از محسنات معنوي المغايره جاهز؟ المغايره هي مدح الشيء بعد ذمه او اكسه كقوله في مدح الديناره بله. مقایره میگه مدح کردن یک چیز بعد از زم کردنش یعنی این که شخص بیاد یه چیزی رو مذمت بکنه بعد بیاد اون رو مدح بکنه یا بر اکس ابتدا بیاد مدهش بکنه بعدن بیاد مذمتش بکنه ببین مدح کردن چیزی بعد از مذمت یعنی بعد از این که مذمتش کرده بیاد مدحش میکنه یا بر اکس اول بیاد مزمتش بکنه بعد بیاد چیکارش بکنه مادش بکنه فرقی نمی کنه مانند قول شاعر در مدح دینار اومده ستوده دینار رو ولی قبل از این مزمتش هم کرده حریری در کتاب خودش دو تا شعر داره یکی در مدح دیناره یکی در چیه بشه. در مدح دینار توری گفته اکرم بهی اکرم بهی خب اکرم بهی از سیغه تعجب دیگه ما افعل افعل بهی با این دو سیغه سیغه تعجب چی میشه درست میشه اکرم بهی چقدر گرامی است راقت سفرتو زرد است و در زردی همچه هست خوشایند است به آوج رسیده است بعد ذنبی میگه این مدهش که اینجا کرده است رو بعد ذنبی اینو مذمت هم کرده بعد از اینکه که دینارو بر علیهش شعر گفته اومده بعدن به نفش شعر گفته بعد می بعد از اینکه مزمتش کرده کجا مزمتش کرده در این, این بیت البته این یک مسررائ آورده و اونجا یک شعر کامل هست در مزمتش و یک شعر کامل هست در مدهشه. تب له منخوااد ممااضق آ بعدا میگه که این زلووج هست این دینار منافق هست. تبل له؟ حالا من خادع فریبنده هست مماثق اخلاص ندارد از روی تمد دوست موقعی که از روی تمد دوستی به ورزه بیش میگن مماثق بیش میگن چی یعنی دوستی اخلاص دوسته باله مماثق پس اینجا اینو بهش میگن مقایره چرا بهش میگن مقایره؟ به خاطر این که مزمتش کرده و اومده چی کارش کرده؟ وصفش کرده حالا اگر برعکسش هم میومد وصفش میکرد بعد مزمت بازم بهش میگن چی؟ مقایره این که ساده بود این که چی بود؟ بیست؟ تأکید المدح به ما يشبه الظم تأکید کردن مدح دقت داشته باش به وسیله آنچه که شبیه به ذم است یلا شما بیای یه چیزی رو مدح میکنی بعدا این مدح رو تأکید میکنی مدح رو ادامه میدی تأکیدش میکنی ولی بگونه مدح رو ادامه میدی تأکیدش میکنی که شباهت داره به مزممت که شباهت ویژه داره حرف اخ... او این خیلی بحث ساده است تو مثال سادگی دقت کلی خیلی ساده است تأکید المدح به ما يشبه ذم ما بربادی تاکید کردن در با آن که شبیه به ذم هست بر دو وجه احدهما اول ان يستنبع من صفتي من صفه ذم من صفه ذم منفیه صفت مدح على تقدیری دخولی ها فیه دقیق داشته باشت میگه نوع اول اینه که استثناء بشود از صفت زم نف شده یعنی ابتدا میاد صفت و نفی میکنه بعدن یک استثناءی میاره بعدن میار چیکار میکنه مثلا من میگم در این کتاب هیچ عیبی نیست ولی خیلی آسانه خب این خودش باز هم مده بود این خودش باز هم چی بود؟ مده بود میگه لا عیب فی بکر لیکن لیکنهو لكن کریم مضیاف بکر هیچ عیبی نداره لیکن بزرگواره مهمان دوسه بس بسیار مهمانه آه مهمان بسیار داره متوجه شدی؟ پس نوع اولش اینه که از یک صفت مذمتی که اون صفت مذمت نفی شده استثناء بکنه صفت مده دیگه ای رو خب اومده صفت زم رو نفی کرده بعدم مده کار کرده مده چی آبرده؟ این که مده هست ولی شبیه به زمه شبیه به چیه؟ مانند این بیت شاعر ولا عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائبی. میگه مگعیبی در درانان وجود ندارد جز که شمشیرهایشان شکستهاند از زدن ها و گردانها و لشکرها خو مو مجاهدینی بیاند مجاهد جاهدشد چون در سطحی باشه که این قد خوب جنگیده باشند که شمشیرانشون شکسته باشه این خودش چیه؟ مده. مده. پس ابتدا اومد چی کار کرد؟ مزمت رو نفی کرد لاعب فیهم نفی چی کرد؟ از یک صفت مزمت نفی شده صفت مز... مز... مزمت شده؟ بعدا اومد یک استثنای آورد. صفت مده رو ولی استثنا کرد صفت چی رو استثنا کرد؟ خیلی ساده هست پس تأکید کردن مدح به آن که شبیه به مذامته ولی این خودش بر دلوعه یک ببین یک ابتدا بیاد صفت مذامته رو نفی بکنه بعدا استثنا رو بیاره و ازش یک صفت مده رو استثنا بکنه دو صفت مده رو ثابت بکنه بعدن عدات استثنایی یا استدراکی بیاره و دوباره صفت مده همون یکی یا صفت نفی صفت مزمت و نفی میکنه بعدن صفت مده میاره یا نه صفت مده اثبات میکنه و بعدش دوباره صفت چی میاره؟ مده میاره و ثانیهما و ثانیهما یا انیس بوته. أن يثبت لشيء صفة صفة مدح، يا أن يثبت ما جهلهش بيعرف بيهرره. أن يثبت لشيء صفة مدح ويقطع بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. صعبة بشيء برأيك كيف الصفة مدح؟ و آورده بشه بعد از اون عدات استثناء که بعد از اون عدات استثناء صفت متدیگی آورده بشه متوجه شده؟ خیلی ساده هست مانند این مثال فتن کمولت اوصافه غیر انه جواد فما یبقی علی المال باقیه است اوصافش کاملند ببین این صفت مده صافی ثابت کرد عدات استثناء غیرون رو آورد بعد از این دوباره صفت مد دیگه آورد جوانیست اوصافش کامل هستند جز آن که بسیار بخشنده است چیزی از مال رو باقی نمی گذاره شدی؟ بله پس این آرا رو خوندیم عکس آراهی بعدی تأکید و ذم به مایش به همه تأکید کردن ذم به شون میخوا یه چیز رو مدح نکنی بلکه ذمش بکنی نکوهشش بکنی بعد از اون میخوایی تأکیدش کنی با چیزی که شبیه به مده شبیه به مده ولی مده نیست مزمت ولی شبیه به چیه؟ مده این هم مثل اون دقیقا بردونه هست فرقی بین این و اون نیست تأکید و ذنب ما یشبه المده هست داربانی ایزا تأکید کردن مزمت با چیزی که شبیه به مده هست بردونه هست همچنین الاول ان يستثناء من صفت مده منفیتن صفة ذنب على تقدير دخولها فيها نحو فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرق نوع أول شيء نكي استثناء بكوني أزيك صفتي مدح نافي شده مياد صفتي مدحو أسترف شكار میکنه نافي میکنه بعدا صفتي مزمت رو اضافه میکنه بعدا صفت مذمت دیگه رو چیکار میکنه صفت مدح و نفی کرد خب موقعی که صفت نفی و مدح کرد دیگه مذمته بعدا صفت نفی رو میاره بر تقدیر داخل شدنش در آن ماننده فلان الله خیر فی فلانی هیچ خیری درش نیست جز این که صدقه میده به آنچه چی که دوزی کرده از آنچه چی که دوزی کرده صدقه میده خب این خودش دوباره صفت چیه بابا چرا برمال اینو به دوزه به یکی دیگه بده پس اومد صفت مدحو نفی کرد ابتدا خیری درش وجود ندارد فلانو الله خیرفی فلانی درش خیری وجود صفت مدحو چکار کرد نف کرد بعد از اون دوباره اومد صفت زم و آورد نوی دوم و ثانی انیس انیس بطا لشه صفت و زن. و یعطا بعدها به ادات استثناء تليها صفت ذم اخرى صابت بشه برای یک چیزی صفت مزمتی و بعد از اول ادات استثناء آورده بشه و بعد از ادات استثناء صفت دیگه ای آورده بشه پس صفت ذم آورده بشه بعدا استثناءی آورده بشه و بعدا صفت زم دیگری که قولهی مانندهین قول شاعر هو الكلب الا ان فيه ملاله و سوء مراع مراعات وما ذلك في الكلب دقت داشته باش میگه او سگ است صفت زم آورد صفت چه آورد بعد الا رو که اداه استثناء دوباره صفت زم دیگه آورد جزء این که در سگ ها تنبلی بدعادتی نیست اما در این آقا وجود داره او سگ است جز این که در سگ های دیگر تنبلی و بدعادتی وجود نداره ولی در این وجود داره دیگه پس اینجا صفت زم آورد بعد ادات استثناء آورد بعدا یک صفت زم دیگه آورد 22 اد بسط دومین ارایه از آرائه های محسنات معنوی تجرید است تجرید هو من امرین ذی صفت امر آخر آخر مثله فیها مبالغه لکمالها فی ویکون بمن نحو لي من فلان صديق حميم او كما قوله تعالى لهم فيها دار الخلدي أوباء نحو لأن سألت فلانا لا تسألن به البحر أو بمخاطبة الإنسان نفسه بله أو بغير ذلك تمامين روا أمر بيجت تجريد إن حسك انتزاب شيء أزيك أمر داراي صفاتي از یک موصوفی گرفته بشه موصوفی دیگر که این موصوف دیگر متصفه به همون صفت موصوفه قبلیست متصفه به صفت موصوفه قبلیست هو ایون تزعه من امر یعنی دی صفت گرفته بشه از یک امر صفتداری از یک موصوفی امر آخر مثله فیها امری دیگر که مثلشه در اون صفت امری دیگر ازش گرفته بشه که در صفت مثل موصوفه قابلیه، مبالغه لکماله ما فی. به خاطر این که مبالغه بشه به خاطر که مثلا من بخوام از یک بخشندهی حاتم و انتظام کنم حاتم تایی رو چه کار بکنم؟ جدا بکنم از هم. شما بخشنده ای؟ شما چی؟ من میخوام از شما یه حاتم این رو جدا بکنم از شما بخواه؟ خب چرا این کار میشه؟ به خاطر این که این برسونم که شما دیگه در آوجه چی هستی؟ بخشندگی هستی در آوجه؟ حالا بیتونم امسه ولی این تجرید با چار شیوه یا با شیوه های دیگه انجام میگیره در عربی یا به وسیله حروف جاره هست یا بدون حروف جاره هست یا با خطاب نفسه یا با کنایه هست خب حالا ما هر یکی از این امسلو رو میاره و یکونو به من میگه این تجرید انجام میگیره به وسیله من نحو لی من فلان صديق حميم مراست از سوی فلانی دوستی دلسوس مراحست از سوی فلانی دوستی خب این دوست دلسوس خود همین آغا همین خود فلانی یعنی فلانی برامن خیلی دوست چیه خواهد تأکید بکنه که فلانی برای من خیلی دوست دلسوزیه شخصی دیگر رو عمری دیگر رو ازش انتظار کرده گرفته امری دیگر رو از همون چیکار کرده؟ انتظا کرده جدا کرده گرفته لیمن مرا هست از فلانی صدیق قلهمین دوستی بسیار دلسوز یعنی فلانی خودشه دیگه فلانی بال، این تجریدش کرده از فلان اوفی فی یا به فی یا و یکونو به من این او حرف عطفه و یکونو فی و یکونو به وسیله انجام میگیره این تجرید کما قولو تعالی مانند این آئی لهم فی برای آنان است در دوزخ یعنی برای کافران هست در دوزخ دارالخلد خانه ابدی خب بابا این خانه ابدی خود همون چیه دوزخه خود همون چیه تجریدش کرده ازش برای آنهاست در جهنم سرای ابدی یعنی جهنم برای اینا چیه سرای ابدیه اول با یا انجام میگیره به وسیله با لان سالت فلانا لا تسالن به البحر اگر طلب کنی از فلانی از دریا طلب ای یعنی فلانی دریا یا یعنی تو اگر یه چیزی رو از فلانی بخوای بپرسی طلب بکنی چیزی رو نیاز داشته باشی ازش بگیری تو از چه چیزی طلب ای همین رو از اون انتظار کرده این صفتو ا به بمخاط... یا انجام میگیره به مخاطبت انسان یا یا با خطاب نفس شاعر بیاد خودش رو خطاب قرار بده شخص بیاد خودش رو چیکار بکنه خطاب بده مانند الله خیل عندك تهدیه ولا مال النطق ان لم تسعد الحال میگه اکنون که مالی نداری سپاهی نداری چیزی نداری که هدیش بکنی به اون طرف پس کمک بگیر از زبانت کمک بگیر از چه؟ اگر موقعیت نداری، مال نداری از چه کمک بگیر؟ داره خودشو مخاطب میکنه. داره خودشو میگه میگه تو که مالی نداری. پس بیا وصفش بکن از این طریق به داد خودت اون طرفو به وصفش بکن، مدحش بکن. زبان که داری، زبان که بله لا خیل عندك تهديها ولا مال. داره خودشو میگه تو که مال نداری. دار خودشو میگه که هدیهش بدی تو که سپاهی نداری تو که مالی نداری فلیسعد النطق نطق, نطق به دادت پیراسه زبان مم. او به غیر ذلك یا انجام میگیره بر راههای دیگه که قوله فلئن بقیت لأرحلن لغزوه تحوي الغنائم او يموت كريم این بدون واسطه حرف جر انجام گرفته گفته بود یا با حروف جر یا با مخاطبه انسان یا بغیر غیر ذلك یا بدون حروف جر هم انجام می گیره تجرید مانند این شعر فلئن بقیت، فلئن بقيت لارحلن لغزوه تحول غنائم او يموت اگر باقی بمانم حتما به غزوی خواهم رفت که غنیمت ها در برداشته باشد یا این که انسان بزرگوار بمیرد یا این که یعنی بمیرم که بمیرم به اون موقع چیزی انجام بله پس اینجا بدون حرف جر انجام گرفته او یا موتو کریمون خودشو چی کار کرده بله این دوینا من فقط برای چی محسلاته معنى بي حسن تعليلو، خيل ساده واضافه ائتلاف لفظ مع المعنى <تصفيق> خير